الحمد لله خير ممنون خان سلام عليكم رحمة الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله لله رب العالمين نحمده و نستعينه و نؤمن و عليه و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سيئات اعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيما بغية الله في الأراضين نتقرب إلى الله بحبهم والبراءة من أعدائهم السلام علیک یا بقیه الله فی ارضه و حجتہ علی عباده و رحمت الله و برکات اوصیکم عباد الله و نفسی به تقبل الله مهمترین اثر تقوا حمراهی خدا با متقین است همان گونه که در قرآن کریم فرمود ان الله مَعَلَّذِينَ تَقْو خداوند با تقوا پیشگان است همراهی خداوند و معیت او با بندگان و متقین ای است که چنان قدرتی پیدا می کند انسان با تقوایی که خدا با او هست که می دو نفر آدم به تنهایی با دست خالی به جنگ کسی مثل فرعون برن و در نهایت پیروزی همه جانبه هم به دست بیارن مثل حضرت موسی و برادرشون حارون پنابرین اگر بخواهیم معیت و همراهی خدا رو با خود داشته باشیم باید به تقوای همه جانبه دست پیدا کنیم در ادامه بحث تفسیر به انتهای آیه چهارم سوره مبارکه ممتحنه رسیدیم جایی که حضرت ابراهیم علیه السلام با همراهانشان در مناجات با خدا عرض میکنن ربنا علی که توکلنا و علی که و علی که بحث ما پیرامون همین جمله و علی هست سیر با سین به معنای حرکت و سیر با ساد به معنای سیرورت و شدن و شکل گرفتن است با این توضیح عرض می کنم هر انسانی در طول زندگی خودش هم سیر و حرکت دارد و هم سیرورت و شدن و شکل گرفتن مثلا انسان با انعقاد نطفش از همون ابتدا هم سیر و حرکت دارد و هم سیرورت و شدن و شکل گرفتن و در هر مرحله ای هم حکم خاصی دارد مثلا در یک مرحله به سن بلوغ میرسد در این سیرورت و احکام خاص الهی متوجه او می شود ولی در هر حال این سیر و سیرورت از لحظه ای که آغاز شد دیگه پایان نمی پذیرد متوقف نمی شود در هر حال انسان در حال سیر و سیرورت هست قرآن می فرماید انا لله و انا علیه راجعون انسان دائم در حرکت را رجعت به سوی خداوند است در آیه دیگر فرمود ال الله کم جمعا بازگشت همه شما به سوی خداست در آیه دیگر فرمود و الله المسیر شکل گرفتن و شدن شما به سوی خداست از جمله در همین آیه چهارم از سوره مبارکه ممتحنه فرمود و الیکل مصیر منتها این رفتن و حرکت به سوی پرودگار و شکل گرفتن به دو گونه است گاهی انسان در این حرکت و شکل گرفتنش در نهایت به می شود و به رضا و رضوان خدا می رسد گاهی وقتا جهنمی می شود و شقاوت او را فرا می گیرد در این بازگشت به سوی خدا دو عمل میکنه انسان فیلمسل فرزندان حضرت عقوب نبی نابعالیه و علیه السلام اینا هم سیر و حرکت داشتن هم شکل گرفتن و شخصیت پیدا کردن اینها در یه حادثه بعد از یه روز فرماجراه به خاطر عمل کردی که در آن روز داشتن این بچه ها به دو گروه تقسیم شدند. برخی صالح و حریم نگهدار خدا و برخی ظالم و حرمت شکن بر می و جا او ابا هم این بچه ها شب همگی نزد پدر آمدن گریه کنن. و بدون یوسف چون او رو در چاه افکنده بودن و به پدر دروغ گفتن به خاطر ظلمی که در حق برادرشان یوسف مرتکب شده بودن پدر هم به اونها گفت بل سولت لکم انفسکم شما در این مورد فریب نفس خود رو خوردید و در جای دیگر فرمود و تولا عنهم حضرت یعقوب پشت کرد به هاش روی برگرداند ولی نسبت به جناب یوسف حضرت یعقوب حرمت او را حریم او را عشق و محبت او را همچنان در دلش داشت پس بنابراین فرزندان حضرت یعقوب همه به سوی پدر بازگشتن به هر حال و در فرجام بلکه بعضیا خوشحال و آبرومند بعضی در حالی که ظلم کردن در قیامت هم همه به سوی یک مبدأ برمی گردن و الین المسیر به سوی ما هست این سیر و سیرورت که با دروی کرد همون جوری که حضرت یعقوب با فرزندانی که به سوی او مراجعه کردن دو روی کرد داشت در قیامت هم انسانها برمی گردن به سوی خدا اما با دو روی کرد و سعید و برخی شقیل خدا هم دو نوع برخورد با اینها خواهد کرد جهنم رو برای عشقیاء گذاشته و بهش رو هم برای سعدا، و چون حضرت ابراهیم سلام الله علیه و همراهانشون رو خدا به عنوان قصره برای ما معرفی فرموده پس شما مؤمنین هم به حضرت ابراهیم تأثی کنید اقرار کنیم به این که به سوی اون خداوند متعال و مبدع خیر برخواهیم گشت در دنیا به گونه ای عمل کنیم که بازگشت ما به سوی خدا به جلوه و جبهه رحمانیت او باشه و جنبه رحمانیت و رعوفیت او باشه خدا نکند که کسانی روز قیامت به سوی, به سوی معاد برگردن به سوی خدا برگردن معادشون معاد بدی باشه عود و بازگشتشون از سر شقاوت باشه و سخت الهی رو برای خودشون بگیرن که قرآن می‌فرماد و بئس المصیر این رقم حرکت بد برگشدنیست خداوند آتش جهنم را برای چنین افرادی قرار داده پروردگارا ما را به فضل و رحمت خودت به سوی سعادت راهنمایی و هدایت و دستگیری بفرما ما را از آنچه که تو را به خشم میآورد و سخت تو را در دارد بازدار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجلة والناس صدق الله العلي العظيم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 اللهم صل سل و سلم و, و على نبينا محمد و الطاهرين الطاهرین على مولانا علی امیر المؤمنين و رسول رب العالمين و على فاطمه الزهراء سیلت نساء العالمين و على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين وسل على علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق بن جعفر الكاظم وعلي بن مسرد المرتضى ومحمد بن علي الجباق وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي الزكي العسكري والحجة بن الحسن القائم المهدي صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين نتقرب إلى الله بحبهم والبراءة من أعدائهم السلام عليك يا بنت ولي الله السلام عليك يا أخت ولي الله السلام عليك يا عمت ولي الله السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر اشفع لنا في الجنة برحمة الله وبركاته اوسيكم عباد الله ونفسي الله از مهمترین عرصهایی که رعایت تقوا لازم هست در خلوت هاست چون رعایت تقوا در حضور دیگران امری طبیعی و شاید برای رضای خدا هم نباشد گرچه به خودی خود ارزشمند ولی در خلوت ها که جز خدای تبارک و ناظر محترمی نیست رعایت تقوا اهمیت و خلوص بیشتری داره قران میفرماید ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة واجر كبير اونها که از پروردگارشون در نهان میترسند مسلما آمرزش و پاداش بزرگی دارند این آیه بر اهمیت خداترسی و حریم نگهداری خداوند متعال در خلوتها دلالت دارد مولای متقیان امیر مؤمنان سلام الله عليه میفرمایند: فرماین اتقو معاصی الله فی الخلوات مؤمنین مردم در ها از خدا بترسید فینش شاهده و الحاکم اون کسی که الان داره میبین شما رو روزی هم محاکمی شما و حکم بر علیه شما به عهده اوس پراقب باشید در خلوتها رعایت تقوا رو داشته باشیم روز گذشته بیست و ششم مرداد ما سار روز آغاز بازگشت آزادگان به میهن اسلامی بود اون رو گرامی میداریم امروز جمعه بیست و هفت مرداد و بیست و پنج زلقعده روز دحول ارزست دحول به معنای گسترشه در آغاز تمام سطح کره زمین رو آب فرا گرفته بود خشکی ها به تدریج سر از زمین بیرون آوردند آغاز این پدیده مهم در چنین روزی و شروع آن از زمین کعبه باعث گرامی داشت و ارزش این روز با عنایت خدا شده در این روز خداوند تعالی عنایت خاصی به بشر و مردم داشته جایگاه خاصی زمین پیدا کرد این روز اعمال خاصی هم داره به طوری که روزه امروز یکی از چهار است که در طول سال چنین روزهایی غیر از ماه موارک رمزان امتیاز ندارن روز سشنبه بی سی مرداد چند مناسبت هست از جمله مصادف با بیستونه آخر ماه زلغت بیستونه ماه زلغت که ظاهرا امسال 29 روز باشه میشه آخر ماه دلغد که سال روز شهادت حضرت جواد العمه سلام الله علیه است. حضرت جواد در شرایط سختی به امامت رسیدن آغاز امامتشون با توجه به سن کم این بزرگوار مواجه شدن با انکار بعضی از مؤمنین و شیعیان و محبین اهل بیت که مگه میشه آقای در این سن سال زیر ده سال به امامت برسه و هدایت امت رو به دست بگیره از طرف دیگر بعد از بلوغ ایشان تحت فشار دستگاه بن العباس و شخص معمون حضرت جوادالعیمه علیه هستان مجبور شدن به ازدواج با ام الفضل نختر معمون چون این زن با ورودش به خانه امام جواد علیه السلام دردسرها و مشکلات زیادی رو به وجود آورد و در نهایت حضرت جواد به دست همین زن مسموما به شهادت رسیدن اللهم صل على محمد ابن علی ابن موسی علم التقا و نور الهدا و معدن الوفاء و رحمت الله و برکات و همچنین روز سه‌شنبه 31 مرداد روز صنعت دفاعی نامگذاری شده این روز نماد اعتماد به نفس و پیشرفت ملت ایران در عرصه اقتدار دفاعی و شکستن تحریم هاست به همین جهت به همه تلاشگران صنعت دفاعی کشور این روز رو تبریک میگم و از اینکه اونها حافظ عزت و اقتدار ملت بزرگ ایران هستند تشکر و قدردانی داریم و برای موفقیتشون دعا میکنیم و برای شهداء صنعت دفاعی به خصوص سردار شهید حسن تهرانی مقدم از گذاران اصلی سنایه موشکی جمهوری اسلامی ایران سلواتی رو هدیه بفرمایید روز چهارشنبه اول شهریور مصادف با اول اولا آرزوی سلامت و آفیت برای حجاج بیت الله الحرام داریم انشاءالله خداوند انها رو محفظ کنه به اعمال حدس کیل و مکر و آزار دشمنان در امان باشن این روز به روز ازدواج هم نامگذاری شده چون در این روز طبق نقل ازدواج حضرت امیرالمومنین با فاطمه زهرا سلام الله علیهما اتفاق افتاد خب امروز موانع مهمی بر سر راه ازدواج جوانه ها قرار گرفته که در پی آن در مجمع متاسفانه آمار ازدواج کاهش پیدا کرده آمار طلاق افزایش یافته و عمر برخی از ازدواج ها هم کوتاه شده در حالی که این پیوند آسمانی مزین به دو عامل مودت و رحمت هست همون گونه که در قرآن فرمودم این آیاته انخلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنو الیها بعد می و جعل بینکم مودتم و رحمت هم مودت و هر رحمت رو خدا بین زن شوهر قرار دادن فی ذالکل آیات لقوم ی اگر این دو آمل رعایت بشه موقع زندگی ها شیرین میشه که در خانم شهید محسن حجاجی قبل از خطبه‌ها ها و دیشب هم در حرم برابنده فرمودن که سبیه شنین همسر شهید حجاجی وقتی خواست قباله تنظیم کنه برای ازدواج با شهید محسن در اون قباله خیلی کم خیلی کوتاه و چیزهای ارزشی را به عنوان محریه کرده. گفته 124 هزار سلوات بر محمد و آل محمد را آقا محسن به عنوان محریه و همچنین حفظ قرآن با معانی اونها که پدر خانمیشون نقل میکردن که شهید تا این اواخر موفق شد نیمی از قرآن رو با همین شکلی که خانمیشون شرط کرده بودن حفظ کنن و قرآن رو تلاوت کنن الا اینکه بعد دیگه به شهادت رسیدن اشونم به سبیهشون توصیه کردن که بقیه این محریه رو به شوهر ببخش که اون مدیون نباشه ببینید وقتی زندگی بر اساس مبدت و رحمت باشه زندگی ها شیرین میشه در این هفته سیل پنج استان شمالی و شرقی کشور رو فرا گرفت و موجب وارد شدن خسارات های جانی و مالی زیادی شد ضمن عرض تسلیت برای جان باختگان این حادثه از دولت انتظار میره خسارت دیگان رو یاری کنه و با چهار اندیشی آسیب رسانی این گونه حوادث رو به عقل برسانه این روزها مجلس شورای اسلامی مشغول بررسی موضوع وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم هست امیدواریم نمایندگان محترم بر اساس ضوابط و رعایت عرضش های اسلامی کسانی رو بر مسلد وزارت بنشانن که بتوانن خدمتگذاران ای برای ایران اسلامی باشن هیچ ملاحظه دیگری رو نمایندگان محترم توجه داشته باشن هیچ ملاحظه دیگری رو بر مسئله حفظ نظام و ارزشهای اسلامی مقدم ندارم. شما نمایندگان محترم که منتخب ملتی هستید که اون ملت جان و مال و آبروی خودشون رو در راه قرآن و اطرت و جمهوری اسلامی ایران تقدیم میکنن جز این انتظاری نیست و چنانچه ای فرصت پیدا کرد برای رفع خستگی در مجلس اکس سلفی بگیره بقیه نمایندگان محترم به او بگن با سر سردار عشق سلفی عزت بگیر پیرزنی اشوگر در خور تکریم نیست این روزها کشور ما تحت تأثیر خبر شهادت و رشادت و شهامت دلیر مردی از استان ولایت مدار اسفهان قرار گرفته جوان مردی که با قیام و هجرت و مقاومت خود حیام عزت و دفاع از حریم ولایت شهیدان را یک بار دیگر به همه ایرانیان و غیر ایرانیان منتقل کرد و با خبر شهادت خود و تصاویدی که منتشر شد امواج فتنه و فساد و ابتزالی رو که دشمن ایجاد کرده بود برای مدتی به عقب راند و خانواده محترم حججی همراه با همسر و تنها یادگار محسن عزیز یعنی که سرش علی شهر به شهر و مجلس به مجلس عطر خاطرات این شهید عزیز رو منتشر می کنن. امروز هم در جمع نمازگزاران قوم در مسلای قدس حضور پیدا کردن و دیشب هم در حرم متحر حضرت معصومه سلام الله ها در مراسمی که به همین مناسبت برگزار شده بود حضور پیدا کردن و از آنان تقدیر شد همینجا از امام جمعه محترم شهر مقاوم و بلایت مدار نجف آباد حجت الاسلام و المسلمین جناب آی حسناتی هم تقدیر و تشکر داریم که امروز با سخنرانی خودشون بر شکوه نماز جمعه ما افزودن را این جوان مؤمن و سرفراز رو با مولایش سید شهده علیه السلام محشور بفرما و بر خانواده مخترم و صبورشان عجر فرابان و صبر بیشتر مرحمت بفرما و جوانان عزیز کشور ما رو در پیمودن راه این شهید عزیز یعنی محسن حججی و حججید و همه شهیدان اسلام و امام شهیدان توان و ظرفیت بیشتر مرحمت بفرما به مردم عزیزمان به خصوص جوانان عزیز توصیه میکنم مطالعه کنید وصیت نامه شهید محسن حججی را خاطرات زندگی ایشون رو مرور کنید ادب ایشون رو نسبت به والدین پدر و مادر ملاحظه بفرمایید جوان های عزیز سایه پدر و مادر بر سر شما سایه ای الهی و خدایی اونها رو گرامی بدارید حرمت والدین رو حفظ کنید، حرمت اساتید رو حفظ کنید. در دنیا برای فساد ابتذال شما دشمن نقشه‌ها کشیده است. بیاموزید از شهید محسن حججی و همه شهیدان راه اسلام و مدافعان حرم این زندگی رو وفاء و بقایی نیست سرانجام به سوی خدا می‌ریم، آبرومند باشیم ان الله و حتمان وصیتنامه این شهید و خاطراتش رو بد نظر داشته باشید در ارسی فرهنگی مبلغ کتاب و مروج کتاب بود ادب نسبت به مقام معظم رهبری و ولایت اهل که در رأس همه امور هست پروردگارا شر دولت مردان جنایتکار آمریکا رو که این روزها موج تنش آفرینی و فساد و بحران اونها حتی داخل آمریکا رو هم فرا گرفته به خودشان برگردان به حرمت خون شهیدان مردم و دولت و مسئولین نظام ما رو در پیمودن راه درست حضرت امام با زعامت رهبر عظیم الشان انقلاب حضرت امام خامنه ای مد العالی یاری <تصفيق> بفرما به فرج امام زمان فرجی به مظلومان عالم مرحمت بفرما مشکلات و تنگناهای دولت و ملت رو با لطف و عنایت خود برطرف بگردان مریضان اسلام جنبازان عزیز شفا و سب مرحمت بفرما باران رحمت سوبرمان نازل و ما رو شکل گذار نعمتهاد قرار بده اللهم اغفر للمؤمنين و المؤمنات و المسلمین و المسلمات عوض بالله من الشیطان الرجیم